چنان سی بیست و پنج ماه و و قطفه یه ده در باب تجربی بعد از ذکر اقسام تجربی صورت مراتب و متناسده در اون قسمت که مربوط به موارد این مجنانی میشه و یوشه از تجربی به عدم و عقلی یا در این مواردی که مراتب متناظبهی تجربه این میشه چه نباید غضب باشه چه از نظر عقلی یعنی براعت عقلیه و نه چه و غضب شرعی هم نباشه یعنی براعت شرعیه درش ادرانه نشه و موردی که براعت عقلی و نبراعت شرعی جاری نمیشه شبهات محسوبه این شبهات شبهات به علم اشمانی که اگر را مش محسوب باشه چه وجوبیه باشه چه تعهیمی باشه علم اجمالی دارم نه اینکه از این دو تا بر من واجبه مش شبهه مسئله وجوبیه یا یک مثالی دارم به این یکی از این دو تا بر من حرام مش شبهه مسئله تعهیمی میشه در شبهه محسوب محسوب مطلقاً براعت اقنی و براعت شرقی جاری نمیشه جاری نمیشه یعنی چیتی؟ یعنی جهر وزرحصات نمیشه در موازدگی جهر حساب میشه یعنی براعت جاری میشه در تمام موازدگی براعت جاری میشه یعنی جهر عزه مثل شبه برکولیه بعدا زرحص مثل شبه خیلی محصوله از این استلاحه وقتی میگن جهر وزرح یعنی مجدار براعتی جهر اوضو نیست یعنی بجای بر برایت نباشی این ها را این حتما مقایسه کردید اون حالم هم کردید و اگر این به بخواد اوضو باشه اگر به حال اوضو باشه یعنی شبهه محصوله نباشه شبهه مغلوم به این نباشه مثل شبهات قیل محصوله باشه یا شبهه بردیگه باشه لمیت حد در احتمال و معصیت اصلا و این تا در احتمال و مخالفته در حکم و واقعی محصیتی نمیشه احتمال نمیره گرد که احتمال مخالفت با واقع هست اما بی موارد جریان اصالت البراعت او استصاب البراعت که از که خواهد جاری میشه که موارد که استصاب, استصاب, براعت. استصاب براعت جاری میشه استصاب نفری حالا فرقش هم حتما در اون موجه موجه دلوقت و دوری آن و اینا که حاله میدهیم برای که اگه خداهای مراجعه کنن براشون میمونه و اعدام همین ها رو نیسته کنیم دونه دونه چی یا چی اونا فایده نداره درس همین شمایی که 70% دلش و اقلاق بمونه و خداهای مراجعه کنن در هر موردی که اصل برایت جاری میشه این جهد عذره در هر موردی که جاری نمیشه این جهد عذر نیست حالا در چه مواردی جهد عذره یعنی اون یه امر یا ارتکازی ارتکازی شما به ارتکاز رو به ذهن رو مراجعه کنید در چه مواردی جاهل محصوله اون موارد مجرای برائت در چه مواردی جاهل رو معذور نمی‌دونی شما اون موارد براءت جاری نمی‌شه از امر ارتکازی تعقدی درش نیست به ارتکازی که مراجعه می‌کنی میشه شوهه محسوله مضرونه به علم المالی. جهل عذر حساب نمیشه ولی در شبه برمیه بعد از فر جهل انسان عضر در شبهات غیر محصوره یا شبهه کثیر در کسی در این موارد جهل عذره به ارتکاض الایی از تعقدی در این موارد نیست بعد فرق بین اصل برائت و استتهاب از نظر تعریفشون و از نظر مجراب و موردشون در چه موالی استصاب برایت در چه موالی است برایت و علاقه هم واقعیت هم داره یه واقعیت نداره صرف طلب و نوشتن اینا در محل خودش این خود تو مراهنشون. من افسا از سطح کل ها مشتکتتون تحاق فائللت مضدل ووقائیه منصبح خوب ذاات ای و جحت ای و ضوع سریت ای نظر نهاییش بود ولی این نعملخلافی ت و از اسان بهفعلدل جد را بهی آیا حرام یا محفق میشه یا حرام محفق نمیشه؟ و در درز مقام قبع اقلی و تحلیم شرعی و استحقاق اقاب اقلی بردسی کنه که به صورت پراکنده از حرزه بحثی کرد بعد استحقاق اقاب و ملازمه با اقاب نداره اقاب یه چیز دیگه است و میشه در بین روایه انسان به تفسیح بشه که اونها اقاب رو برمیدارن نه استحقاق اقاب شاید در مواد تجربی هم حرمت باشه، هم استحقاق قاب باشه معزاده اقف هم متردد بشه، اقاب فعیلی برای متردد نشه به این استحقاق اقاب از نظر عقل و به این اقاب خارجی فرق یقین و علیه که به تعمل بگل من الاخسان که خیلی از مقایزشو خوندیم و مقداری مواضح شده تجربی، تجربی، استلاعی باشه یا تجربیه وستی باشه یا قسطی باشه بعضی از نواهی تجربی وستیه به واقعا تو دلش هست که تمرگر کنه بعضی از موارد تجربی فعیه آف ولی به خیاریم این شرابه بعضی از موارد تجربیه قسطیه یعنی قسم تجربی داره ولی قصد تمرگر نداره دوست داره این کار انجام بده ولی حرامه، ولی قصد تمرگرده بر مولان نداره اینجور نیست که هر گناهی و هر مخالفتی عین تمرد باشه اینطور نیست مخالفت میکنه و میدونه که تحتار تمرد میکنه و نسبت به تمردش راضی نیست و نسبت به مخالفت راضیه پس مخالفت با امر بود مو. مولا این عین تمرد و تغیان و اسیان حساب نمیشه حالا یه مطلبی آخر همین رو انداختی گذار شهید بود یه معانی در کلمات هست نظریشون آخرش چی میشه اندافه شاید شاید کردن شهید اول شهید اول هاش چی میگی همونه قانون شهید قلت اس سر رو و ادلال این شاید از بهترین کتابهای روزبه حساب میشد الان اصلا نیست اینو سابقا می خوندن اونهایی که قواعد و قواعد شهید اول رو می خیلی خیلی تصدد داشتن همه چیام بلد میدن ولی الان این کتاب ها نیست لا يؤثر لا توأسف نیت المعصیت عقابا ولا ذم مالم یه طرف بها آدم انسان وارد این کار نشه نه اقابی داره و نه مزمندی داره و هو ما ثبتا نم ما ثبتا بالاخباره علا افوان به گذشت کردن میخواستن بالا نهها معسییت و طلب بصبه ما یا و و ظهر خللااق ها غفی تثیر ها ذهن از خلیسه ننظر ها، نداره دو احتمال درش هست من ان لم لممالدم یا صاد معسییت واقعی سارت و قصد حساب میشه و یا غیر و به ها، قناو این حرام نیست، اقا هم ندارد. و من دلالتها ها على که ده حرمت مولویه و جرعته عل المعاصی، عمى که میتونه حرمتها رو بشکنه، بدتری اخلاق دیگه حرمت شکنی یا جرأت بر معاصی، خود این جرأت مذموم لذا میتونه حرام باشه. و قد زنگره بعض از اصحاب وقت ذکر بعض از ها ان نهول و شرب و مباهر هم به شرب المسیه و عده حرام یعنی آب میوان آب رو برداره عدای شرابخارها رو در بیاره و بخوره داره حرام کرد یعنی حتی در شکلش شنبه بخواد مثل اونا بخوره یا تو زرپونها بخوره مثل این لیوانهایی که الان یعنی کمرباریش در اومده حال شراب بوده سابقا الان تو صفره هم میزارن. زنها میگردن توی این بازال اینا رو پیدا میکنن عدیق و جات رو میارن تو خونه بعد اینم میگه حرامه یعنی آب میخوره ولی تشکیحن بشور به مسکر اینهای گفتن حرامه بعضی از اصحاب تا این هم قائله به حرمتن به او شد بر مباه تشکیحن بشور به مسکر فعل حرامن الله لیسل لئیس از آلکل میگه نیگه این بخاطر خصوص قصدیتی بند بنزمام فعل جواره که اون صورت خوردن شبیه به شراب کاریه اونها چی طور میخورن لم میدن و این میدنن میخونن این خالده تلبی و اونایی هم که آب رو اینطور بخورن اونها هم حرام یعنی حتی در قیافه اونها بخواد درگیات حرام هست سابقا فکر ما اینطوری بوده یا مثلا صوت زن رو عورت می میگفتن می صداش عورت صداش نباید نامهرم بشن ولی الان میگن نه قصد ریبه نباشه حالا ریبه به چی میگن گن به تشکیجه ریبه کسی به همدلالله ریبه نداره همه معصومن دیگه ریبه کجا بود اختلاط زنها و مردها در حد خیلی کثیر و خیلی مشتننده یعنی هر کجا به یعنی فروشگاه ها دیگه کلا زن و دختر اینها رو نگه کسی اقباس کنه دیگه بگه چیزی نمیبینم یا چیزی اتفاق نمیفته و الا چه معنای داره در یه فروشگاه های خطوصی حتما پشت دفت اینها یه دختری بشینه چه معنایی داره اون خاطر میگن چرا اوضا این چون اموال مشتبه میشه در فقه متاجر دومه خوندید اگر یک بازاری رنگ نیوه هاشو بخوا کنه با لام ای اینو گفته شبهه داده مثل این گذره که دو خورمه ها لام روشن میکنن بعد میادید تو کنونیو مینیزن اینا با پهنیش فرق نداره. این تو مواضی رنگی میادید تو خونه یه دیگه هست اینه ها شبهه میکنه حالا ما یه دختری استخدام کنه بیایمی جذابیت ایجاد کنه برای این بیزای این شبه نداره با اون خاله 24 ساعته میدونه آخرش همیچی و کلایی هم که درآمد دارن سرف حرام میشه من بعضی از مواره هم به بعضی از رسورانه ها گفتم تو آدم ها خوبی هستی دوستی چه سال بود حلاف داشتی میخوردی این مکشفه چی اینجا گذاشتی بیشکار کنه نمیان مردمی ن حتما باید اینه بذاریم اینجا یعنی وظیفه ماست بگیم حالا عمل نمیکنن کنند ولی حالا گفتنش الان عمومی شده دیگه البلیت و عمت امت هانت یا تابت این بلا عمومی قبه نداره مثل قبه دروح که همه بردی دروح میگن هیچ اشکالی هم نداره. حالا سابقا صوت زن اورت بود صداش میگفتن نشن ولی الان نه میگن هیچ نداره والا کاری نداره به اجتهاداتش میگن یعنی, یعنی فقه قدیم یه مقدار درش بود ولی الان خیلی مسائل فوجی میشه مفاتیحی که میگن خب اشکار نداره که ریبه نداره ریبه به چی میگه ریبه چیه ریبه رو برام الان این صفه یه چند مغازه بوتیک داره از بنده قم هست این همه مغازه لباس های زنانه رو که سرا می پوشن گرود ممنونه خودش آغاز ده می... یعنی بعد انده اونه ایستده میگم بعد منزمام فعل جواره یعنی اتان ظاهر فعلشم نباید تشریه به شربه مسکر بهش اونها که لم میدادن و شراب میفردن اگه کسی آب هم اونطور بخوره میگه الان میگن طرف بعضی از فقه ها مثل کافی فقه قدیم معاصر شیفه رویسی اونها قاعدا نمی‌کردن. و یک تصرف محل نظر فیسو ورحانس حتی فرق فقهی خود شدیه در بواهدش آورده این از موارد تجربهی لو وجد امرأة في منزل تیله، فذنّه اجنابیّة، فاصابه و فبان انها زوجته او عمته، این تجاریه سیم. و منها لو وکه زوجته باذنّ انها هایزون، فبانت توهینه، این توفّع. لو حسم ادا طامن بيد غيره فأكله فتبين عنه ملكه لو ذبح شاطا بذن انه للغير بقدس العدوان عليه فظهرت ملكه عن مال خودش ما اذا قتل نفسه بذن انه معصومه يهر قتلها و بانت یجب یه جمومتی ها و قد قالت اعدالامه یهکم و به متعاطی زاله اونهایی که مباشید تعاطی یعنی مباشید اونهایی که مرتکب این امور میشن. یعنی بی مبالات هستند نسبت به حلا و حرام متعاطی این بی مبالاتی ها هستند اینها ها فاسدن. شمس محکوم به فسق همینی که نمیپرسه این از کجا اومده هر کجا دعوت کنن میره و میخوره اون همی که شکم سیر بشه حالا این بولیش از کجا میاد چی شده شبه ناک هست یا نیست نبراش مهم نیست وقتی این طوریه میگه متعاطیر و مباشرین این افعال فاسقه یه کم و به فسقه مباشره لذال کم امور اندلتت کرد امور چرا؟ فاسقه ادلالتی علا عدم مبالات بلماسی چون ادالت که تعریفی داره بعضی میگن عمل به واجبات و ترکیم و حضمان میگن نه استقامت در جاده شریعت اونهایی که متعاطیه این امور مشتبه هستن یا استقامت نداره وقتی استقامت نداره محکوم به فسد شد بنابراین یک مبنایی در باب ادالت که حکم به فیض مبتنی بر امم همه است و یه آقاب و فیل آخرت مالمیت رو اقابا متوسطا بین سقیلت و کبیر یعنی اقاب متجری یک اقاب اشد از اقاب ذنوب سقیل و اقل از اقاب زنوب کبیر هست گناهان کبیره اقاب شن از هزار روزه گناهان زیره 500 روز شخص متاجری و هفتاد روز باشند. و کلای هم آن تهد کمان و تخریب لسان علّدی. یعنی همین که متواتی نمون باصر باشه. و همین که یو آقابوی الآخرت اقبال متوسطان تهد کمان. یعنی استسانون و تخریب لسان علّدی. این طرفیویه. قابل یاد این نسبت به مسائل در باب تجربی محصل مقالبی در تجربی گفتیم محصلش تجری یکی از فروعات باب حجیت در باب حجیت قد مغنایشو شما الان باید معلوم شده باشه. آیا مبنای مشهور رو قبول می‌کنی؟ مبنای آقای خویی رو قبول می کنید. مبنای محقق اسفحانی رو یا محقق شیستر از این شهارتا نورا می انتخاب می کنید بعضی ها باید هم ذاتیه و مستند ذاتیتش هم باشدیت شه بنابراین هر قطعی به ما وقت حدیت داره شخص متجربی هم اقاف میشه هم قبیه انجام داده هم کارش حرام نظر مشهور که کاشفیت رو میعان میدونه نظر برام آقای خویی هم با شبیه همینه کاشفیت رو ذاتی نمیدونه لازم ذاتی میدونه اونم باید قائل بشه به اینکه هم قبیهه و هم حرامه و هم با سوجه بگاه مثل اگه محفظه استحانی قائل قاهل بینی که حسیت اعتباریه اگر اعتباری باشه ذاتی نباشه میشه انسان قائل به تفسیم بشه که آیا در این موارد حکم عقل به قوه تجربی هست یا نیست که شهیست هستم که حق خودتایه هست مرتبط به مقام الفانه الفان عملیه که باب حسیت و قدر رو منعوت به حق قطعه گرفته در این موارد احتمالات هم منطقیزه لذا شخص متجربی هم قوی هم داده، هم کارش حرامه هم مصفوجه بگاه لذا این چهار نظریه سه تاشون مرتبط به قاعده حسنقوب همنیه یکیش مرتبط به قاعده هفت قطعه هست یعنی مصدق مشهول و مثل که آیه که لازم ذاتی می دونه اونها که لازم ذاتی می دونه. و مثل اکه اینها بین حدیت قد و قائده حسن قبح عقری یا او که استحانی قاعده اینها قاعده به رابطه یعنی بین حدیت قد و این قائده رابطه هست اگر کسی قائده به حدیت شه تنها دلیلش قائده حسن قبحه چه عقلی که مشهور عقولی میگن چه عقلایی که انسانیه بذار ارتباط هست. اگر که چون قاعده رفتشونه کنه و حیثیت نداره اگر, اگر کسی در اون قاعده قاعده به عقلی باشه و حیثیت قد اگر کسی در اون قاعده قاعده به اقلاییت باشه که انسانی قاعده حیثیت قد هم عقلاقی ازای ارتباط هست که اون بایده را هر طوری به پذیره و از صغریات قاعدهی حسن و بوله. چه عقلی و چه اغلایی این نظره این سه مذهب مذهب چهارون که مسئله که خودتایی بود اینم قاعده به اینکه بین بایده, بایده, بایده حسن چه عقلی و چه اغلاییش با قاعده حجیت قد هیچ تا لازم ارتباطی است ارتباطی من میگه نداره کسی اون قاعده رو این بکنه باز باید قاعده به حتیت قلب بشه ارتباطی قاعد نیست اینا در حرقه یه دو و سه خوب بهش تصریح نشده کسی تو شک و شبهه نمونه بین قاعده یه حتیت و قاعده یه اصنق و شیستت قاعده به ارتباط نیست اطلبه چه عقلی بگیریم چه اقلاعی بگیریم میلیار حسیت قبر رو قاعده هفت خطاهم حالا مناقشات خودش رو داره مناقشات این نظریه بیشتر از مناقشات اون سه است. هست به فاطه اینکه حق خطایه ارتباطی به اغلا نداره اون مال اورفاست اورفای اسلامی که قاعده به هفت خطاهم ولی مردم کوچه بازاری که اصلا مولغیت قائم نیستند یا حتی شاید خدای قائم نباشد، در صحت میدونند. چه ارتباطی بین این دو تا وایده؟ ما داریم هویت ذات رو از منظر او و عقل او غلائی اینا راست که به خود قائم نداره. مضافاً بر اینکه حق خدای دو قسمه. حق خدای تکوینی داریم. که ثابت ذاتی ازلی و که قابل این کاره از مدرکات عقل نزنیم. یه حق خودتایه تشتیعی داریم حق خودتایه تشتیعی اعتباریه یعنی نسبت به عوامه و نواهی شاره اگر به ما برسه یه حقی برگردن ما میاد قیل از حق خالقیت و مالکیت و نمیدونم منعیمیته ارتباطی با اون نداره شاری که حق مالکیت و خالقیت داره ذاتیه ولی یک حق تشریری هم داره اگر اوامر و نواهیش به ما برسه باید عمل بکنیم این حق تشریری هم خطاهای تشریری اعتباریه ذاتی نیست بنابرای منوز به این عدله ما تمام باشه واصل شده باشه لذا مزدگه احتمالش از وین میگه قول پنجم این بود که گفت و قد به هیچ کدام از اینها ندارد، نه به مسئله که هفت نه به قاعده حسن با تمام تفاصیلش و تفسیرهاش چه عقلی بگیدیم چه و قلایی بگید و قد به قاعده مسئولیت و معذوریت بود علامه تواتبایی. یه مسئله خیلی زیبایی داره و این با پشت همین صفحانه بشته بودم. و نمیذارم اینم تکسیر شد یا نشد ایشون میگه چرا قد حجیت هست و حجیت قد یعنی چی در مسلکه ایشون حجیت قد یعنی مجوب مطابقت ای. از علم و طبعیتی. چرا؟ خیلی خوب تنزیلش کرده یعنی واقعیت هم همینه مردم خوچه بازار از صبح تا شب دنبال واقعیت هم خوردن واقعی خوابیدن واقعی خریدن واقعی و تمام که گنجا میدن واقعیت داره نمیزن یه خیال کن خوابیدی به خیال اکتفاله میکن خیال کن مثلا خوردی. خیال ازدواج کردی، خیال مجتهد که به خیالات اتنالی نمیکنند، دنبال واقعیت هست. از صبح تا شب دنبال واقعیت هم، یعنی واقعیس نه، واقعیران، دنبال واقعیت هم، واقعیت هد یا واقعیت باطل، دنبال منافع خودشونه، از صبح تا شب دنبال منافع، وقتی دنبال واقعیت ها هستن، این واقعیت ها اقراض این هاست قایات این هاست دایی دارن بنابراین حکم واقعیت ها رو به علم به واقعیت ها دادن میگن وجوب متابعت از علم من خیلی خلاصش بگم در دو کلمه تعبیرات شید متحری نارساس ولی تو دو, دو کلمه ترجمه من بگم وجوب مطابقت علم با این تفسیری که علامه گفته یعنی پیگیری واقعیت ها دو کلم است. پیگیری واقعیت انسان ها پیگیر واقعیت هست اینه بیان وجوب مطابقت علم یعنی وجوب مطابقت از اون معلومشون معلوم بالعرض هم نه معلوم به ذات ذهنی هم نه معلوم بالعرض خارجی یعنی حکم بالعرض خارجی قبیلتر از حکم به بل... ذات ذهنیه چون چیزی که ما علمش پیدا کردیم معلوم ما معلوم دو بسمه یک معلوم ذهنیه که معلوم به ذات میگم چون سنخیت با علم مجرد داره معلوم به ذاته یک معلوم بالعرض خارجی داریم که واقعیت های خارجیه مردم وقتی میگن واجب مطابقت کنن از علم یعنی وجود مطابقت از معلوم بلارز خارجی یعنی پیگیری واقعیت ها. پیگیری واقعیت ها رو میشه از یه نه اوقاله همیشه پیگیری واقعیت هم پیگیری واقعیت هن از واقعیت میکنن خوردن واقعی خریدن واقعی مسکن واقعی شهرت واقعی همه چی تو واقعیت از وجوب مطابعت علم که در علم موضوع بشین یعنی حجیت در ایده علامه تبا طبع تبایی شناس و مفصل عظیم و حکیم یعنی پیگیری واقعیت ها دو کلم هست اینا را آن یاد بگیرن البته مطالعات شما باید بیشتر از اینها باشه نظریات دیگر هم بریم وده خب نظریه علامه مقدم بر همه نظریات هذیلی واقعیت‌ها، خوشیت‌گات یعنی چی؟ یعنی اوقلا غلا به غیر واقعیت. واقعیت از کجا میاد؟ علم بود که این واقعیت از کجا میاد؟ حکم معلوم بالارض رو دادن به علم. ویدئ این تاریخیت، این موضوعیت نداره که چیزی که موضوعیت داره برای اوقلا اون آپارتمان اون ماشین، اون ریاست، اون تدریس، اون درس، اون خوردن، اون تابیدن، اون زندگی جزائیه. چیزی که برای واقعیت داره موضوعیت داره اونه علم طریقه تا علم پیدا میکنه میده دنبانش علم پیدا میکنه پولا این میده زود میده سفران میکنه علم طریقه چیزی که مهمه همون شهری است پس وجود ما علم در مسئله که ادامه یعنی پیگیری واقعیت ها این هیچ ارتباطی به حق خود تایی نداره هیچ ارتباطی به قاعده حسن واقعا هم ارتباط نداره این هم یک تفسیر پنجه می شود قیلی اون تفسیری که ما گفتیم تفسیر ششم که ارتباط رو چیت به مسئولیت ها و معذوریت ها یعنی قد پدشدیه نیچی؟ یعنی خاطر عذره آیا مطلقا قاطع عذره؟ نه اگر با مسئولیت باشه یعنی اگر اول بقیر از روی مسئولیت باشه اغلا میگن یعنی این حجت و وجوب مطابعت از قط یک وجوب اغلاییه نمیدنم تو صفحه چیز خوندید اینو یا نه نه؟ اصول فلسفه و روش آدیس اصول فلسفه رو با سال اول طلبگی خوندید الان اگه نخوندید تا صبح نشده بخوندید این کتاب رو خیلی کتاب خوبی. وجوب اقلاعیه فلمراد به وجوب متابع تلقه این نظر ششم میشه خودتونم این نظر هستون پایینش بنیمسید فلمراد به وجوب متابع تلقه اون وجوب اقلاعی فی مقام تحصیل اقراض و دوایی زمند فکاریه ولی ملاک بیازال وجود خواهد تریریت که قبل اینها رو گفتیم و اگر حسیت بخواد اغلایی باشه سلوک انسانی در جامعه بردی به اجتماعی مرتبط به حسیت مباشرتن ولی اولا حسیت و لساخت درز و درده این ها اینها رو این تمام کلام در این واضی یه مثلایی از باز مونده و اونی که اعتباریات ما تقسیم کردیم مسئله قرار این احکامش محدود نشه اعتباریات رو تقسیم کردیم مثلش در این صفحه 56 هم اینا رو نوشتمم سمعلمان الاحکام الا تابعتون تا بعثن لغ را ذهن ول الی ول من مسئول همان مقاصد ظاهریه عقلان نه مسائل و مقاصد واقعی ظاهری هر چیز منفعت داره دنبالش میدن احکامشون می احکام تا به همی چیز هست. خیار قرم برشون خوبه میگن باشه بد باشه میگن نباشه کاری به دین و خدا و پیغمبر و حوزن نداره احکام اقلها رو خط نکنیم ما اقلهای بیعقل رو داریم بحث میکنیم نه با باشور و عاقل و نمیدونم حکیم و متعله او قلایی که دنبال منافع، هر کسی دنبال منافع شخصی باشه شلحیوانه. وقلا که در بحث حیوانا داریم بحث میکنیم نه مال اغراضن بله اون مزرعه چون حیوانا ندارن ولی انسان تاثیر هم داره دل داره تجاوز هم داره ما اینا داریم بحث میکنیم اوغلا میگن یاد نکنید اوغلا یک عقل ملدا صدا در سرشون هست و اون عقلو داریم بحث میکنیم اینطوری نیست اوغلا به ما هم اوغلا یعنی عقل معاش دارن نه عقل معاش یعنی درست میکنه چیم به نفرشونه چی به نفرشون نیست عقل معاش دارن عقل و دارن میده عقل معاش کما انن احکام از شهری تابعتون دل الواقعیت نفس الامریه این هم نسبت به احکامش و امن احکام العقلیه این محل اختلاف و نظام و تشاجره و فیها بخصون حیث انر عقل نظری یدر کل و الواقعیات واقعیت ها رو عقل نظری دارد. شما هر چیز داری میبینی، این مدرک به عقل نظری هر چیزی از تجربه به شما رسیده باشه مدرک به عقل نظری هر چیزی حدثی باشه حدث مثل قبوه تفکیل منتها سرعت انتقال داره حدث نه که خیال حدث علمی یعنی از فکر بالاتر در فکر شما باید یه ساعت بشین فکر کنید در حد زود منتقل میشه یعنی از فکر بالاتر، از عروم دجنانی حساب میشه شما هست میزنی که این شخص اومد برای چی اومد این شخص رفت برای چی رفت این سوال برای چی بود؟ از فکر خیلی خیلی بالاتره و در عرفان خیلی ازش استفاده میشه هر اونا که خیلی ذکاوته دارند، حالا یا ذاتی باشه یا اشتصالی باشه ذکابت ها رو میگن هست عقل نظری مدرک متحصولات واقعیات که از طریق حس و تجربه و حدث و وجدان و امسانی ها به انسان میرسه و الاغل و الاملی کل اعتباریات. ولی و این نیازه تفسیره و هاز الاغل محفر کن للانسان الا کمال نفس شناب القبائه و ذکاب و ها از القسم نده کامل اعتباریه یر سنده به افعال اخیاریه انسان فلحاکم عملی ها که منها بود افعال اخیاریه و محرزه انسان مختاره و شخصی که اختیار نداره جانب عقل عملی شار نمی کنه فلحاکم فیبا به حسن و القب عملی، و هنها که نظریات و مضافن الى مارعاه الاشعری که اینها واقعیت چیه؟ بس صفحه در صفحه پنجاه هم خب فرض بین احکام و با اقل چی میشه؟ خب همه چیه اعتباری هم یه فرض جوهری بلاشا بردید سو معلمندل قضا یا اما اخباریتون و اما خسولیتون ببین یکی از که واقعیت داره در کتاب های اصول ازش بحث نشده قضایای ارزشی که نه اخباریه و نه اینشایی قضایای ارزشی قضایای ارزشی مرتبط برمه و این جاش در کتاب های اصولی خالیه اگر بگی مراد از اینشایی ام از مصولی و اینشاییست برای اگر کسی بگی نه مراد از اینشایی همون مصولیات هم میگیره حسین خامنه یعنی تحصیل صناعی میشه و, و این تا تحصیل در احکام عقلمندی و این نل اعتباریات علافسام اعتباریات نفس الامريه فلسفیه اعتباریات محزه اوغلاوی که مرتبط به حقوق اقراض و دعوای اوغلا این یه چیزی که واقعیت داره بین اوغلا هیچ تکلیفی نمیخوان انجام بده میخوان فقط به حقوقشون برسه. هیچ آقلی نمیخواد زیروبار تکلیف بده. فقط میخواد به حقوق برسه تکالیف نیمونه این تکالیف رو کی برگردن اینا بذاره عقل عملی بنابراین اعتباریات تقسیم میشه به دو قسم یه قسمش به عهده عقل عملی میوزه که تکالیفه انسان رو مکلف میکنه به خوبی ها مکلف میکنه به اشتناب از ببیه ها و یه قسمم احکام و همیشه میگه دنبال حقوق خودت باشه بلا تزیه حقوق دیگران هم درش باشه لذا بین این مسول حقوقیه یعنی قضایای ارزشی حقوقی و مسول تکلیفیه به قضایای ارزشی مسئولیت دار باشی تفکیش پاید شدید و یکیش براخته عقل عملیه و یکیش بر اوهی عقل اوغلای اقل معاشه اینو در صفحه 57 بخونید شاید بعضی شبهات منتفع بشه این نسبت به این باب حالا شاید خیلی مطالب مونده باشه خودتون پیگیری کنید حالا چیزی دیگه تو ذهنم نیست مطلبی که مونده باشه نوعا همه این مطالب رو گفتیم حالا از الهامی درش مونده باشه نوع مصادیقی که در باب تجربی و باب منطق فهمشام براتون باب بعدی باب قطع حاصل از مقدمات اقلی یک اختلافی اصولیین یعنی مستهدین با محدثین و اخباریین از قرن دهم اختلافی حالا علتش هرچی بود علتش هرچی بوده اختلافی افتاد در بین نفس علمای ما میگه که مزمحل کنندم بوده نسبت به مکتب که برزی شدن اخباری و بعضی هم شده هم مشتهد اصطلاحی یعنی اصولی هی که در رأسشون امین از ترابادی از تراباد همون گرگان امروز علال اقوا همون گرگان امروز نه دوستای دور اختاد و امسالی نمیره از ترابادی قائل شد به این که یکی گفته عدلده استنباد چهارتاست عدلده استنباد یکی نه چهارتا چون اصولیه میگن کتاب سنت اجماع و عقل اینها قائل شدن به اینکه نه عدله فقط اخبار کتاب رو گفتن اوتیت نداره تو ما نمیفهمیم ما کتاب رو نمیفهمیم مخاطب قرآن که پیامبر باشه پیامبر میفهمه قرآن چی میخواد بگه ما قرآن رو نمیفهمیم قرآن رو بذاشتن کنام بعد اجماع هم که به تبع محقق اردبیلی و سید مدارک چون اجماع رو بی‌شکنش کرده بودند اون اجماع رو باز گذاشتن کنار که صفایلی نداره عرق رو خودشون ماده گذاشته کنار از خرابادی برنامه تنادری که برایمون مونده اخباره به این فرق, فرق میگن اخباری چرا به دو دلی یک دلیلش اینه که اینها همه اخبار رو معتبر میدونند، ضعیف و غیر ضعیف مرسل و غیر مرسل و همه انواعش رو می به معتبر روایت ها رو برای شهن بالای قائله و جمع ویم کردن و دلیل دومش می اینه که اینها از این عدده اربعه اومدن فقط اخبارش رو گرفتن بقیه رو کنار زدن الان کل حال این مصدقی مصدقی بود که احداث شد ترختاران خیلی قوی و قدریم پیدا کرد. بعضیا که خیلی خیلی متسلب در افتارگلی بودن مثل خود همین افتر که به همه بعد و گفت بلا استثنان و زیبنده یکی عالم نبود این همه توفنده بخواد به همه حرف بزنه خیلی زشتم هست بعد از یه طرف بگم اومد خود ستایی کرد در خواب دیدم و نمیدونم چی شد و تفنان پیدا کردم تفنان پیدا کردم و به من الهام شد و این کسی رو برون نکنه زال و موزل سالین اینها به زیبنده یک عالم شیهی نبود اینها باعث شد بعضی متصله در این مسلک شدن مثل خودش یعنی بروری راهایی که شیخ توسی و هلوی و دیگران گفت که قبول کردن در افتادش شدن بعضی بین بین شدن مثل بعدی اخباری خوبی شدن مثل مجلسی اول مثل مجلسی دوم اخباری خوبی هم. مثل اخباریهای های قبل مثل صدو مثل پدر صدو اونا اخباری بودن و اندامه مجلسی و پدرش هم از اون اخباری های خوب هم از ترابادی اخباری خوبی نیست یا سید نعمت الله جزایی اینا در این جانب افراد و یا مشکلاتی هم مکتب ایمان میگه شده از این و علمی داره تا اینکه که بعدا به دست وحید بهبهانی همه اینها بیشکن شد این یه نفر قدری میخواست که در مقابل اینها بیسته اون شخصم هم وحید بهبهانی تمام قابطه های اینها رو رشته کرد. و تمام مظهومات اینها را از بین برد و اخباری گریه کرد. حالا تکوتو بعدا طرفتارانی داشتی داشتین ها دردش شده کار نداریم ولی این حیمن شکست حیمن یکی از در درست کرده و همه باز رو آبادم ها، اشتهاب منطقه بعضی ها علامه مجلسی زاده بهار موندن و مثلا که بدی هم نیست مثل خود و وساعت اخباری ولی اخباری خوبیه خیلی خیلی خوبه منطقه در سالهای بعدش باز این داره اوت میکنه مثل صاحبی مستدرک بازعود کرده اخوارگری اومده مستدرک رو نوشته هزار سال زحمت کشیده بودن روایات ضعیف انداخته بودن دور این آقا زحمت کشید سعیش هم مشکوره. خیلی خیلی زحمت کشیده. و سال شیخ خفاظ قومیه ولی خوب اومده همه اینا رو جمع کرد همه اینا جمع شد و معضلاتی در ایته ازتماع درست کردی یعنی خیلی از موارد که میبینی استناد میشه به این در وسایل نیست های در مستدرک هست. اگر مستدرک نبود این احکام این هم نبود حالا بعضی از احکام رو بعدا من مثال میزنم این ها شویه رو پیدا من منبعش وسایل نیست بلکه مستدرکه آره این باب رو کاری به مناشهش اینا نداریم اق... قطع حاصل از مقدمات هم میگیم و عدلی عقلی یک و دو تیت عقل رو که برای مطالب حالا غیر از این که مطالب قبلنگ رو بگیرم دو تا تفسیر داره. یک عقل صدرائی داریم عقلی که در منطق در فلسفه برمسی میشیم یک عقل اصولی داریم عقل اصولی یعنی حکم جزمی هر حکم جزمی رو میگن حکم عقل. ولی عقل صدرائی طور نیست عقل صدرائی متوقف و برهانه، گرمان منطقیه حالا امین از سرابادی میگه حکم شرعیه حاصل از مقدمات عقلیه یا قطع حاصل از مقدمات عقلیه و تیت نداره کدوم اون مخواد بگیه هایی که زده به ریاضی و هندسته و موسیقی و امثال اینها داره عقل فلسفی میگه به حکمت یا حکمت عملی یا حدمت نظریه وارد اون حیطه شده در حکمت نظری که متشکل سه علم ریاضیات و طبیعیات اداعیات و اومده گفته امروزیت نداره و خطا داره اشتباه داره و فقط و فقط پاید از معصومی بگیم درید معصومین حرفشون رو نداره حالا آخر وقت مطالب زهایه میشه فردمه این رو از الور شروع کنم بگم بله هره حکم جزمی. آره جزم. هر حکم به جاسم؟ آره. چی از خارجی زداش؟ یزمیه. حالا با تاب واقعا می‌خواد باشه می‌خواد نباشه. جزوه برای این بحث نوشتم یعنی قبلش اگه الان گفتم این چیزا که بیرون دارم میگم در جزوه نیست چیزایی که در جزوه گفتم از بیرون نمیخوام بگم چون فرصتش نداریم حالا تا 15 تا صفحه از این جزوه ها باز نوشته شده. چون یارم تکثیر کنید بخونید مطالعه کنید برای تشخیص یقین اصولی با یقین منزلی که بوده و فایلا دفتیم با بری تو آی من به همه درست آقا میگه تو سیگه بیخواهی دن میگه باید بالنجا این موردی هده هست خود کوپی بگیم کوپیش بگیم اینا رو حالا کوپی هم بردیم ما رو کفتون هر دنیه بالا حالا میره حالا هرچی خوده از اون نده اما رسید اون زحمتش ما آقا بگشه سبسنام بکنه ما افتگم میکنیم سیدیش رو هر میبریم سبسنام بگشه آره سبسنام آقا. الان شما علیرضا نشدین جدی که به خطر تنظیریتون نمیکنه دارید یه جدم اورفیدال دارید که اما از نظر عقلی ممکنه این سقط بدی این پس جذمی که میگید همین جذمی که الان اما اون عقل سطراییه که شما احتمال بدید از سایر احتمالات یک یا هیچ کدامش در وقتی الان این جز الان دارید این دو احکام عقلاییه الان که عملیه اگر حساب به عقلا ضرورت رو